ریچل سشنبه شونزده جولای 2013 صبح توی قطار هشت و چهار دقیقه نشستم اما نمیخوام برم لندن عوضش میخوام برم ویتنی امیدوارم حافظم اونجا یاری کن و وقتی میرسم به اون ایسکا بتونم همه چیزو واضح و دقیق ببینم بفهمم زیاد امیدوار نیستم اما کار دیگه یم ازم بر نمیاد نمیتونم به تام زنگ بزنم خیلی خجالت جلت خیلی واضح بهم گفت که دیگه به بهش زحمی نظرم گفت که دیگه اصلا نمیخواد با هم سر و کار داشته باشه. مگان همچنان گم شده است. حالا دیگه بیشتر از 60 ساعتی که غیبش زده و ماجرا تبدیل شده به یه خبر ملی. امروز صبح خبرش رو سایت بی, بی سی و میل آنلاین بود. یه چند تا اشاره کوچیکم توی سایت های دیگه. من از هر دو خبر بی, بی سی و میل پرینت گرفتم. اونا رو به خودم دارم. اینا رو توشون انتخاب کردم مگان و اسکات روز شنبه با هم جر و بحث کردند همسایه گزارش کرده که صدای بلند آنها را شنیده است اسکات جر و بحثشان را پذیرفته و گفته همسر شب را با دوستی به نام تارا ابستاین ساکن کولی گذرانده است اما مگان به خانه تارا نرفته بود طبق گفته تارا او آخرین بار مگان را اصر جمعه در کلاس یوگا دیده بود من میدونستم مگان باید برای یوگا خانم ابستاین گفته او خوب به نظر می رسیده، خیلی معمولی، حالش خوب بود و درباره کار خاصی که می خواست ماه بعد به مناسبت تولد سی سالگیش انجام دهد صحبت می کرد. یک شاهد مگان را در حال رفتن به سمت ایستگاه قطار ویتنی حوالی ساعت هفت و به عصر روز شنبه دیده است. مگان در آن منطقه کسی را ندارد، پدر و مادر او فوت کردند، مگان شاغل نیست، او گالری کوچک را در ویتنی اداره می کرده اما آفریل سال گذشته آنجا را تعطیل کرده است. من می دونستم مگان باید هنرمند باشه. اسکات مشاور آیتی است. من فلان فالو شده نمی تونستم باور کنم اسکات یه مشاور آیتی باشه. مگان و اسکات سه سال است که با هم ازدواج کردند. آنها از ژانویه 2012 در خانه ای در جاده بلنیم زندگی می کنند. طبق گفته دیلی میل ارزش خانه آنها 400 هزار پوند است با خوندن اینا متوجه چیزایی میشم که انگار برای اسکات بده نه فقط چون جروبس کردن نه مثلا اینکه وقتی برای یه زن اتفاق بدی میفته پلیس اول به شوهر یا دوست پسرش نگاه کنه. هرچند در این مورد پلیس تمام اوامر رو نداره اونا فقط شوهر رو میبینن احتمالاً چون از دوست پسرش خبر نداره همینه که من تنها کسی هستم که میدونه دونه دوست بسری هم وجود داره. دست میبرم برم چیه کیفم تا یه تیکه کاغذ رو پیدا کنم. پشه یه دونه از این برچه بطری شراب لیستی از بیشترین احتمالاتی که ناپدید شدن مگان هیپفل رو توضیح میده یادداشت کردم. یک اون با دوست بسرش فرار کرده. کسی که از اینجا به بد اسمشو میزارم بی. دو بی بلایی سرش آورده اسکات بلایی سر شورده چهار موضوع خیلی ساده است، اون شوهرش رو ترک کرده و رفته جای دیگه ای زندگی کنه. پنج، کس دیگه ای غیر از بی یا اسکات بلایی سر شورده من به اولین احتمال که نزدیکتره و چهار رومی که ادعای محکی فکر میکنم چون. مگان شخصیت مستقلی داره اون زن خودسریه مطمئنم که اینطوره و اگه درگیر ماجرای عاشقانه بوده احتمالاً نیاز داشته دور بشه تا ذهنشو پاک کنه نه پنجم زیاد محتمل به نظر نمیرسه کشته شدن به دسته یه زیاد معمولی نیست ذهنم به شدت دور برداشته نمیتونم فکرمو از چیزی که شب شب دیدم منحرف کنم نمیتونم تجسمش نکنم نمیتونم بهش خیال بافی نکنم همینجور که از جلوه خونه این مگان اسکات رد میشم به بالا نگاه میکنم. میتونم تپش خون توی سرم حس کنم. به هم میریزم. احساس ترس میکنم. پنجرهای خونه پلاک پونزده آفتاب صبح همون اکس میکنن مثل یه جفت چشم کور میمونه. عصر روی صندلیم نشستم که گوشی زنگ میخاره کتیه. میذارم بره روی پیغام صوتی بیان میذاره. سلام ریچل. تلفن کردم ببینم خوبی؟ اون به خاطر جریان تاکسی نگرانمه. فقط میخوام بهت بگم که متاسفم میدونی راجعه به چیزی که اون روز بهت گفتم اینکه باید بری. نمیخوام بری. واکنشم خیلی اقراغام بود. میتونی تا هر وقت که بخوای بمونی. یه مکس طولانی میکنه و بعد میگه. بهم زنگ بزن باشه. یه راست بیا خونه ریچ. نرو بار. من قصد این کارو ندارم. میخواستم موقع نهار بنوشم. بعد از اتفاقی که امروز صبح توی ویدنی افتاد ناامید شدم. به هر حال من چاره ندارم. باید ذهنم روشن نگه دارم. خیلی وقتی که هیچی ارزش اینو نداشته تا ذهنمو رو براش روشن نگه دارم. امروز صبح ویتنی بودم. خیلی با اونجا غریبم. انگار نه انگار که سالها اونجا بودم. انگار فقط یه چند روزی بوده همین. درست مثل این میمونه که رفتم یه جای جدید یه ایستگاه جدید توی یه شهر جدید من یه شخص متمایز بودم یکی که شنبه شب رفته اونجا امروز محکم حشیار بودم، فوق حشیار. در مقابل صدا و نور و ترس کشف کردن داشتم بی اجازه وارد اونجا می شدم. این اون چیزیه که امروز صبح احساسش کردم چون این قلم روی اوناس و حالا قلم روی تام و آن ناو و, اسکات و مگان. من بیگانم به اون را تعلق ندارم و در عین حال همه چیز به شدت برام آشناس. پایین پله های به اگه اگر از سمت راسپری بری به کیوسک که روزنامه توی خیامون روزبری. نیم بلوک به انتهای نقطه تقاطع. یه ورودی تاقداره که به زیرگذر مرتوب و بیروهی باز میشه که میرسه به قطاره و سمت چپ میخوره به جاده بلنیم که اونجا خط باریک که درختها جلوی تراس قدیمیه با صف و صف کشیده حسی شبیه خونه اومدن داره ولی نه هر خونه ای. خونه بچگی جایی که یه عمر باشه سرگذاشتیش مثل قدم گذاشتن روی پله هاست در حالی که میدونید دقیقا کدوم پله قشقش قش میکنه این حس آشنایی فقط توی ذهنم نیست توی است توی حافظه ماهیچه هم امروز صبح همین که به ورودی زیرگذر رسیدم و داشتم از دهن سیاه تونل رد می‌شدم قدمام تون شد بهش فکر نکردم چون همیشه به اینجا که میرسم یکم سری تر راه میرم هر شب موقع برگشتم به خونه مخصوصا ها یکم سری تر راه میرفتم سری میپیچیدم به راست خیلی مطمئن هیچکس کس دیگه اونجا نبود هیچکس. کس نه تو اون شبا و نه امروز با این حال من امروز صبح وقتی توی اون تاریکی رو نگاه کردم مثل مرد خوشگم زد یوحوی تونستم خودم رو ببینم من تونستم خودم و چند متر اونبرتر ببینم شده کنار دیوار سرم توی دستام و سر و دستم خونی قلبم توی سینهم تاپ تاپ میزد من اونجا وایستاده بودم مسافرا همین جوری که داشتن میرفتن برسن به ایستگاه از کنارم رد میشدن یکی دو نفر برگشتن به هم نگاه کردن و همون جور که رد می شدن من هنوز تو همون حالت بایستاده بودم. من نفهمیدم. فهمیدم. نمی که اینا واقعی بود. چرا رفته بودم تو زیرگذر؟ چه دلیلی داشت برم اونجا؟ جایی که تاریک و نموره و بوی گند شاش میده. دور زدم و برگشتم مستقیم رفتم ایسکا. نمی خواستم بیشتر از این اونجا باشم. برم نمی خواستم برم جوله د میخواستم از اونجا دور شم. اونجا اتفاق بدی افتاده بود. میدونم که افتاده بود. می گرفتم و به سرعت از پله های رفتم. همکف و همینطور که داشتم جلو میرفتم دوباره ذهنم جرقه زد. تو زیرگذر نه. رو پله بود. من رو پله ها سکندری خوردم و مردی بازوم و گرفت. بهم کمک کرد تا بلند بشم. اون مرد موسرخه توی قطار. تونستم ببینمش. یه تصویر مبهم بدونم مکالمه خندش یادم اومد نمیدونم به من میخندید یا به حرف خودش با هم خوب بود مطمئنم از این ن... یعنی تقریبا مطمئنم اتفاق بدی افتاده بود اما فکر نمی این اتفاق کاری باشه که اون انجام داده بود سوار قطار شدم و رفتم لندن رفتم کتابخونه خونه و نشستم پوشه یه دستگاه کامپیوتر در جستجوی داستان مگان توی سایت تلگراف بخش کوچیکی بود که میگفت مردی سی ساله به پلیس در تحقیقاتشون کمک میکنه. باید اسکات باشه. نمیتونم باور کنم اون بلای سر مگان آورده باشه. میدونم که کار اون نیست. من اونا رو با هم دیدم. میدونم که همدیگه رو دوست دارن. یه شمارهم گذاشتن که اگه کسی از جنایت خبری داشت با اون شماره تماس بگیره و به پلیس محلی اعلام کنه. میخوام تو راه خونه زنگ بزنم از یه تلفن همگانی میخوام میخوام زنگ بزنم و راجب بی باهاشون حرف بزنم راجب چیزی که دیدم درست وقتی که میرسم آشبوری تلفنم زنگ میزنه دوباره کتیه دختر بیچاره واقعا نگرانمه با لحن دلواپسی میگه ریچ چه قطاری داریم یه خونه بهش میگم آره آره یه رو دیگه میرسم پلیس اینجا ریچ. با این حرفش انگار آب سرد میریزه رو میخوان با تو صحبت کنم چهارشنبه جولای 2013 صبح مگان هنوز پیدا نشده و من مکررن به پلیس درو گفتم دیشب وقتی برگشتم آپارتمان بحشت کردم سعی کردم خودم را قانع کنم که لابد به خاطر تصادفی که با تاکسی داشتم اومدن منو ببینن اما اینطور به نظر نمی رسید من با پلیس در مورد اون صحنه صحبت کردم واضح بود مقصرم باید چیز دیگه ای باشه در مورد شنبه شب لابد کاری کردم لابد مرتکب کار وحشتناکی شدم و این فاجعه است میدونم احتمالش کمه چی کار میتونم کرده باشم مثلا پاشدم رفتم بلنیم و به مگان هیفل حمله کردم جای بلای سرش آوردم و بعدش تمام اینا رو فراموش کردم <تصفيق> مسخره به نظر میاد اما میدونم شنبه اتفاقی افتاده وقتی توی تونل تاریک زیر زیرگذرو نگاه کردم فهمیدم اتفاقی افتاده چون خون تو رگم یخ کرده. گاهی کاملا پاک میشه. این مثل وقتهایی نیست که توی راه خونه از باشگاه حرف با رو که تو گپ و گفت بار زدی یادت رفته باشه. نه. اینطوری نیست که یکم هم باشه. این فرق داره. کاملا تاریکه. ساعتهایی از دست رفته هرگز قابل برگشتن نیستن. تام. یه زمانی یه کتاب با این موضوع برای من خرید. خیلی رومانتیک نبود اما داشت سعی میکرد به حرفم اهم اهمیت بده. وقتی که صبح میشد و من میگفتم متأسفم، و حتی نمیدونستم برای چی متاسفم. فکر کنم میخواست به هم نشون بده که دارم چی کار میکنم که مستعد چه چیزایی هستم. کتاب یه دکتری نوشته بود اما اینکه دقیق بود یا نه نظری ندارم. نویسنده مدعی بود که در این نوع عدم حشیاری، موضوع فراموش شده چیزی نیست که اتفاق افتاده بلکه در وهله اول حتی نمیدونی چیزی رو فراموش کردی. نظریش این بود که مغز آدم در چنین وضعیتی دیگه خاطرات کوتاه مدت رو نگه نمیداره و وقتی در اون وضعیت باشی در اون سیاهی عمیق جوری رفتار نمی کنی که به طور معمول رفتار می خیلی ساده است تو داری به چیزی واکنش نشون میدی که خیال می توی گذشته دور اتفاق افتاده. چون این ما نیستیم که خاطرات رو و در واقع نباید خاطراتی رو که در گذشته اتفاق افتاده بدونیم. نویسنده حکاییت هم داشت داستان های اخترامیز برای حالت های ناهشیار مستی مثلا این داستان که یه یارویی توی نیوجرسی بوده که موقع جشن سال روز آزادی امریکا چه جولای مست کرده. بعدش سوار ماشینش میشه تو بزرگ را. چندین مایل توی لاین اشتباه رانندگی میکنه و میخوره به یه ماشین ون که هفت نفر توش بودن. ون آتیش میگیره و شیش نفر کشته میشن. مست خودش تریش نمیشه. اونو همیشه همینجوریه. ترویچ خاطره ای از نشستن توی ماشینش نداشته. مرد دیگهایم هم بود. این بار توی نیویورک از بار زده بیرون و با ماشینش رفته خونه‌ای که توش بزرگ شده بوده و ساکنین اونجا رو با چاقو کشته. همه لباسای خودش رو در ورده و برگشته توی ماشینش. تا خونه خودش رانندگی کرده و رفته گرفته خوابیده صبح روز بعدش که بیدار شده احساس وحشتناکی داشته. هیرون از اینکه لباساش کجان و چطوری اومده خونه اما چیزی دستگیرش نمیشه تا وقتی پلیس میاد سر وقتشو میفهمه که دو نفر رو به شکل وحشیانه ای بدون هیچ دلیل روشنی کشته. این مزخرفه، اما خب غیر ممکنم نیست. دی توی را تا وقتی برسم خونه خودم قانانه کردم که من یه جورایی تو موضوع بغرنج ناپدید شدن مگان دست داشتم افسرای پلیس روی مبل اتاق نشیمن نشسته بودن یه مرد حددودن چل ساله با لباس شخصی و یه جوانکی با یونیفرم که گردنش پر از آگنه های جوش بود کتی پشت پنجره روای بود دستش رو به همدیگه فشار میداد وحشت زده به نظر میرسید پلیس بلند شدن لباس شخصیه که خیلی قد بود یک سر سرخم کرد و با هم دست داد. خودش رو گسکیل معرفی کرد. اسم افسر پلیسم به هم بهم گفت اما یادم نمیاد. حواسم نبود. به زور نفس میکشیدم. تند و کوتاه ازشون پرسیدم. چی شده؟ اتفاق افتاده؟ مادرم؟ تام؟ گسکیل گفت. همشون خوبن خانم وطن ما فقط می‌خوام بدونیم که شما عصر روز شنبه کجا بودین و چی کار کردین. درست همون جور که تو تلویزیون میگن انگار واقعیه بدونن من عصر شنبه چی کار کردم. من عصر شنبه چه غلطی کردم؟ گفتم باید بشینم. کاراگا جای خودش روی مبل من داد و کتی کنار دست گردن آکنه ای پا به پا شد. لب پایینشو میجرید. به نظر می اومد از کوره در رفته. از ازم پرسید شما خوب میگانه واتسون؟ و به بریدگی بار چشمم اشاره کرد. گفتم با یه تاکسی تصادف کردم دیروز بعد از ظهر تو لندن. رفتم بیمارستان میتونین بررسی کنین. با تکون ناچیز سرش گفت باشه بسیار خوب. عصر شنبه. گفتم من رفتم ویتنی سعی می صدام نلرزه برای چه کاری؟ گردن آکنه یه دفترچش و برداشت و مداد دستش گرفت گفتم میخواستم شوهرمو ببینم کتی گفت ریچل کارگاه جلوش گرفت گفت شوهرتون منظورتون شوهر سابقتونه دیگه هان تام باتسون آره من هنوز فامیلیمو عوض نکردم فامیل اونو دارم فقط به خاطر اینکه راحت تر بود. اینجوری لازم نبود کارت های اعتباری و آدرس های رو عوض کنم یا پاسپورت جدید بگیرم و این چیزا. درسته میخواستم ببینمش اما بعد من شدم و برگشتم خونه. باز صدای گسکیل بود. از حالت صورتش نمی دقیقا چیزی برداشت کرد گفت این چه زمانی بود؟ وقتی حرف میزد لباش به سختی تکون میخواد. میتونستم صدای خرت خرت مداد گردن آکنه روی کاغذ بشنوم میتونستم ضرب خون رو توی گوشان بشنوم ساعت فکر کنم، ساعت و ششونیم بود فکر کنم، ساعت 6 سوار قطار شدم. و اومد این خونه، شده، شده من سرمو بلند کردم و با کتی چشم تو چشم شدم. تونستم از نگاهش بفهمم که می میدونه دارم دروغ میگم. شد یه ذره دیرتر شدم، یکم زودتر. آها، حالا یادم اومد فکر کنم بعد از ساعت هشت رسیدم خونه. گرگرفتن گرفتن گناهامو حس میکردم. اگه این مرد نمیفهمید دارم دروغ میگم، لیاقت پلیس بودنو نداشت. کاراگاه چرخید. نسبتاً به ضرب یکی از ها رو از زیر میز گوشه ای اتاق به سمت خودش کشید. اونو صاف گذاش رو بروی من. دو متر اونورتر. نشست روش. دستاش روی زانو، سرش یه بری. گفت: خب. بنابراین شما حوالی ساعت 6 منصرف شدین یعنی دارین میگین تا ساعت 6 و نیم احتمالا توی ویتنی بودین و ساعت هشت برگشتین اینجا. منیش اینه که شما باید حوالی هفت و نیم از ویتنی رفته باشین. به نظرتون درسته؟ گفتم بله دیگه درست به نظر می اون لرزش صدام برگشت منو فاش میکرد برای یه لحظه نزدیک بود ازم بپرسه از 6:30 تا چی چیکار کردم و من جوابی نداشتم بهش بدم و شما در واقع نرفتین شوهر سابقتون رو ببینین بنابراین اون یه ساعتی که ویتنی بودین چیکار کردین؟ یه ذره اون اطراف چرخیدم صبر کرد. تا من با جزئیات توضیح بدم. فکر کردم بهش رفتم بار اما این احمقانه بود. همینطور میتونست قابل بررسی باشه. بعدش ازم میپرسد کدوم بارو این که اونجا با کسی حرف زدم یا نه. همینجوری که داشتم فکر میکردم چی بهش بگم به فکرم زد که بپرسم چرا میخواد بدونه عصر روزش هم به کجا بودم. خب اینم عجیب به نظر میرسه. منو بیشتر موثر جلو میده. ذهنم خوندی؟ ازم پرسید با کسی صحبت کردی؟ رفتین توی فروشگاهی باری چیزی با یه مردی توی ایستگاه حرف زدم این حرف از دهنم پرید با صدای بلند تقریبا فاتحانه انگار که چیزی رو روشن میکرد چرا اینارو میپرسین چی میخواین بازرس کاراکا گسکیل به صندلیش تکیه داد شاید شنیده باشین که یه زن اهل ویتنی زنی که توی خیابون نیم زندگی میکنه درست به فاصله چند خونه از خونه یه شوهر سابقه شما گم شده م? ما خونه به خونه رفتیم از کسایی که اونو شب قبلش دیدن پرسجور کردیم یا کسایی که چیز غیر عادی دیده باشند یا شنیده باشن و در طول تحقیقاتمون به اسم شما رسیدیم چند دقیقه سکوت کرد تا حرفش تهنشیم بشه شما اون روز اصر توی خیابان بلنیم دیده شدین هل و وقتی که خانم هیپول گم شده خونش را ترک کرده خانم آنا واتسون به ما گفت که شما رو توی خیابون نزدیک خونه خانم هیپفلد دیده. چندان از ملک شخصیش فاصله نداره. گفت که رفتار شما خیلی غیرطبیعی بوده و نگران شده. در واقع اونقدر نگران که زنگ میزنه به پلیس. قلبم مثل پرنده ای که توی قفس گیر افتاده باشه بالبال می‌زد. نمیتونستم حرف بزنم چون کاملاً خودم رو توی اون لحظه می‌دیدم. خم خم راه رفتنم توی زیرگذر و خون روی دستام. خون روی دستام واقعا خون خودم بود باید خون خودم باشه به گسگیل نگاه کردم سنگینی نگاهش روی خودم حس کردم و فهمیدم که باید سری چیزی بگم تا نتونه ذهن من رو بخونه گفتم من هیچ کاری نکردم نه من فقط میخواستم شوهرم رو ببینم گسگیل دوباره تحصیل کرد شوهر سابقتون عکسی از جیب پولیورش بیرون کشید و به من نشون داد عکس مگام بود. پرسید. این زن روشن به شب دیدین؟ من یه مدت طولانی به اون عکس خیره شدم. دیدن عکس اون به این شکل خیلی فراواقعی و سورئال بود. من داشتم به اون زن مو طلایی بی‌عیب نگاه می‌کردم، کسی که کسی که زندگیش توی ذهن من ساخته و بازسازی شده بود. عکس یه نمای نزدیک از چهره بود. این کار حرفه‌ای چهرش یکم تیره تر از چیزی بود که تجسم کرده بودم نه کاملا به خوبی تجسمی که از جس داشتم خانمه واتسون شما دیدینش اگه میدیدمش نمیشتاختمش واقعا نمیشناسمش در هر صورت من منونو نمیشناسم گفتم نه فکر نکنم فکر نمی‌کنین منظورتون اینه که دیدینش من, من مطمئن من مطمئن نیستم اصر شنبه چیزی نوشیده بودین قبل از اینکه بریم ویتنی صورتم گر گرفت گفتم بله خانم واتسون آننا واتسون گفت که وقتی شما رو بیرون خونش دیده به نظر شما مزد بودین مزد بودین؟ گفتم نه نگاهم و ثابت به کاراگاه دوختم نگاه نگاهم با نگاه کتی تلاقی نکرد من بعد از ظهر دو تا نوشیدنی زدم اما مست نبودم. گسکیل آه کشید. به نظر میرسید ناامید شده. به معمور گردن آکنهی نگاه کرد بعد برگشت سمت من. آروم آروم عمدن با پا صندلی رو هل داد پشت میز و گفت اگه چیزی راجب به شنبه یادتون اومد هر چیزی که ممکنه به ما کمک بکنه لطفاً به من زنگ بزنید. و کارت ویزیتیو داد دستم در حالی که گسگیل با افسردگی به کتی سرتکون داد و داشت میرفت من روی مبل ولو شدم احساس کردم ضربان قلبم آروم شد و بعد دوباره بالا گرفت چون صدای بازرس و شنیدم که از ازم پرسید شما توی روابط عمومی کار میکنین درسته؟ هانتینگتون ویتلی ها؟ پیش خودم گفتم میخواد بررسی کنه میخواد بفهمه من دروغ گفتم یا نه؟ نمیتونم بذارم خودش کشف کنه بعد خودم بهش بگم بنابراین امروز صبح دارم همین کارو می‌کنم می‌خوام برم ایسکای پلیس موضوع موزو روشن کنم می‌خوام همه چی بهش بگم بگم که ماها قبل شغلمو از دست دادم شنبه شب حسابی اسب بودم و نمی‌دونم کی اومدم خونه می‌خوام چیزایی رو بگم که شب قبل باید می‌گفتم بگم که داره جهت اشتباهی رو دنبال میکنه می‌خوام برم بهش بگم که معتقدم میگان هیولیه معشوق داشته